دوستان هم به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. مهمترین قسمت یک دو چرخه کدومی که از قطعات اونه. چرخای اون یا صندلی یا کدوم قسمت. اون قسمتی که خراب میشه یا میشکنه. امروز ما به درسمون ادامه میدیم تا به شما کمک کنیم که مهمترین کتاب جهان رو بهتر بفهمید. کلام خدا کتاب مقدس. ما اولین کتاب کتاب پیدایش رو مطالعه می‌کنیم. ما می‌بینیم که خدا آدم رو خلق می‌کنه، اما یک چیزی کم بود. حالا اینجا معلم به ما کمک می‌کنه که بسیاری از مشکلات کتاب مقدس رو بهتر بفهمیم و بهتر درک کنیم. به درس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید. این فرصتی است که با همدیگر کلام خدا رو مطالعه کنیم. و چهکریم که تصمیم گرفتید بخشی از این سفر روحانی با ما باشید. در این جلسه مایلم که به چیزی که کتاب پیدایش درباره تولد یا آغاز مخلوق داره نگاهی بندازیم، یعنی انسان. یادتون باشه که منظور کتاب پیدایش اینه که اون رو به ما آنگونه که بود بگه تا اینکه بتونیم اون رو اونطور که هست بفهمیم. وقتی که به مسئله آفرینش انسان می رسیم، ما به موضوع خودمون می رسیم. کتاب پیدایش چه چیزی برای گفتن درباره انسان داره؟ وقتی ما آفرینش انسان رو بررسی می کنیم، از قصد و منظور خدا از خلقت انسان چی یاد می گیریم؟ ما برای اون سوالات جوابهایی پیدا خواهیم کرد، زیرا باور می کنم که خدا به این دلیل با ما از خلقت انسان در کتاب پیدایش صحبت می کنه. در کتاب پیدایش، شما شرحی از آفرینش انسان رو می بینید.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 در باب دوم پیدایش ما کلمات بیشتری رو در خصوص خلقت انسان می‌بینیم. در آیه هجده باب دوم پیدایش میگه و خداوند خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد پس برایش معاونی موافق وی بسازم و خداوند خدا خابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دنده‌هایش را گرفت و گوش در جایش پر کرد و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد. و وی را به نزد آدم آورد، از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. مبحث خلقت انسان یا پیدایش انسان به ما درباره انسان آنگونه که بود میگه تا اینکه ما انسان را آنگونه که هست درک کنیم. اون با ما راجع به خود ما همانگونه که بودیم حرف میزنه تا اینکه بتونیم خودمون همان همانگونه که هستیم درک کنیم. عالم گونه که در شرح خلقت انسان میبینیم اولین چیزی که ما رو تحت تأثیر قرار میده این حقیقته که انسان به شباهت و به صورت خدا خلق شده این چه معنی داره خدا یک روحه خدا جسم نداره پس این نمیتونه اشاره به بدن انسان باشه پس وقتی خدا میگه انسان رو به شباهت خودش خلق کرده به چی اشاره داره این کلام خدا به قابلیتی اشاره میکنه که خدا به انسان داده تا روحانی بشه عیسی فرمود آنچه از جسم زاده می شود جسم است که به ما میگه تولد جسمی شما شما را مولودی جسمی میسازه این وجود جسمانی ما نیست که باستابی از صورت و شباهت خدا باشه اون قابلیتی که میتونیم تونیم روحانی بشیم چیزی که ما رو به شباهت خدا در میاره به نظر می که در باب دوم پیدایش وقتی خداوند خدا این زمین رو میگیره و اون رو شکل میده و وقتی درون نفس حیات رو میدمه انسان یک جان زنده میشه یک روح زنده یعنی وقتی خدا انسان رو به شباهت و به صورت خودش خلق میکنه چون خدا روحانی هست انسان هم میتونه روحانی بشه اگه بهش فکر بکنید انسان این قابلیت رو داره که بدتر از هر حیوانی در جنگل باشه هیچ حیوانی در جنگل هرگز 6 میلیون حیوان رو به قتل نرسونده فقط به خاطر اینکه ظاهر اونا رو دوست نداشته اما انسان این کارو کرده اگه تاریخ رو بخونید که انسان با انسان چه کاری کرده، ایمان دارم که شما هم به این نتیجه می رسید که انسان این قابلیت رو داره که بدتر از حیوان باشه. شاید شعر کوتاهی رو که از قول یک میمون نوشته شده شنیده باشید که مضمونش اینه. نسل انسان تند و ناس از اما او از نسل ما نیست زیرا هیچ میمونی هرگز زنش رو کتک نمیزنه و زن و فرزندانش رو ترک نمیکنه. شعر اینطور ادامه پیدا میکنه انسان میتونه از هر حیوانی بدتر بشه و انسان قابلیت داره که مثل خدا بشه انسان قابلیت اینو داره که روحانی باشه اون چیزیه که به او این توانایی رو میده که به شکل و شباهت خدا باشه همونطور که به پیدایش باب سوم رسیم خواهیم دید این شکل و شباهت خدا که انسان به اون صورت خلق شد خراب میشه چون انسان نافاتیعی میکنه و مرتکب گناه میشه مشکل اساسی که کتاب مقدس با اون برخورد میکنه اینه که خدا چگونه انسان رو برمیگردونه و این قابلیت رو به او برمیگردونه. قصد او این بود که او روحانی بشه و به این وسیله به شباهت و به صورت خدا در بیاد. در تیه بررسی انسان این اولین مشاهده ما از انسان هست. آنگونه که بود و آنگونه که هست. انسان خلق شده که روحانی باشه. حالا اگه انسان روحانی نیست، اگر انسان از جنس جسم متولد شده و از روح متولد نشده نمیتونه به شباهت و به صورت خدا باشه زیرا خدا زنده است عیسی مسیح به انسانها به عنوان مرده اشاره نموده مردی نزد عیسی آمد و گفت میخوام تو را پیروی کنم ولی اول اجازه بده تا بروم پدرم را دفن کنم من موظفم پدرم را دفن نمایم وقتی آن وظیفه را انجام دادم بعد تو را پیروی خواهم کرد اینجا ما یکی از بیانات تند عیسی مسیح رو میبینیم به او میگه پدرتو قبلا هم مرده بود بذار تا مرده رو مرده دفن کنه و همین الان بیا و مرا دنبال کن این گفته های ایسای مسیح سخت بود منظور عیسی مسیح چی بود که به او گفت پدرت قبلا مرده بگذار که مردگان مرده رو دفن کنن او میگه چون فقط تو به صورت جسمانی زنده ای، معنیشی نیست که تو واقعا اون اونطوری که خدا برای حیات انسان ترک کرده بر اساس کتاب مقدس ما وقتی تولد جسمانی پیدا می کنیم به شباهت و صورت خدا در نمیاییم. ما زمانی به صورت و شباهت خدا در آییم که تولد دوباره پیدا کنیم به این دلیل که باید دوباره متولد بشیم و به این دلیل که ما به اون عمل خلقت در قلبمون نیاز داریم اظهار نظر دیگری رو هم که میتونیم درباره خلقت انسان بکنیم اینه که اونها رو به صورت زن و مرد خلق کرد چرا خدا زن و مرد رو آفرید این اولین نمونه از عمل جراحی با بیهوشی بود. اولین متخصص بیهوشی خود خدا بود. او سبب شد که آدم به خواب عمیق بره و بعد یکی از دندههاش رو بیرون آورد و از اون زن رو خلق کرد. به نظر من این یک تشبیه بسیار زیباییه. دانشمندان الهیاتی قدیم میگن که خداوند زن رو از قسمت سر مرد خلق نکرد که زن بر مرد حکومت کنه. از پای مرد خلق نکرد تا خادم مرد باشه. خدا از دنده و کنار بدن مرد زن را آفرید و چه چیزی به قلب مرد نزدیکتر جز دنده مرد؟ مقصودش این بود که زن در کنار مرد باشه و این تشبیه تصویر بسیار زیباییه. چرا خدا زن رو خلق کرد؟ کتاب مقدس میگه خدا مرد رو خلق کرد و مرد کامل نبود. حتی در حالتی که صورت و مثال خدا بود. خدا گفت خوب نیست که مرد تنها بماند. برای او یاوری بسازیم که به معنی کامل کننده است برای او کامل کننده ای خواهم ساخت بنابراین خدا زن رو آفرید که مرد را کامل کنه. اگر به گرامر ابری مراجعه کنید خواهید دید وقتی خدا مرد و زن رو کنار هم قرار میده امروز اون رو ازدواج مقدس میگیم. یا اتحاد جنسی اون دو یک تن شدن. این چیزیه که در واقع گرامر ابری اظهار میکنه، خدا انسان رو مرد و زن خلق کرد، چرا؟ خیلی از مردم فکر میکنن که در واقع عدن آدم و حوا مرتکب گناه روابط جنسی شدند. این خنده داره. خدا اونها رو قبل از سقوط برای یکی شدن خلق کرد و گفت بسیار خوب است. وقتی خدا چیزها رو خلق میکرد میگفت خوبه، ولی وقتی اتحاد جنسی رو خلق میکنه میگه خیلی خوبه. اون قبل از سقوط بود. علت سقوط اونها روابط جنسی نبوده. چرا خدا اونها رو با تمایلات جنسی خلق کرد؟ زیرا خدا وقتی مرد و زن رو کنار هم قرار داد قانون حیات رو بنیان گذاشت که یکی از اصول اساسی قانون زندگیه خدا مهمترین بنیاد را که امروزه بر روی زمین داریم به وجود آورد و آن را خانواده و یا خانه میگیم اون نقشه خدا بود وقتی اونها رو مرد و زن خلق کرد تا اونها رو به یک مشارکت بیاره تا بعد از اون بتونن پدر و مادر باشند و بعد به عنوان پدر و مادر انسانی را که خود بعدها پدر و مادر خواهد شد تولید کنم این بزرگترین قانون زندگیه که تمام خانواده بشری رو تولید میکنه پرستاری می کنه و هدایت میکنه. به منظور اینکه این قانون زندگی عملی بشه خداوند لازم دونست که دو شریک زن و مرد شایسته والدین بشم این دو والدین شایسته باید یک شراکت شایسته داشته باشم برای داشتن یک شراکت شایسته باید دو شخص شایسته داشته باشی این روشی بود که مقرر شد عملی بشه برای اینکه قانون خدا کارایی داشته باشه باید والدین شایستهی در اون دخالت می‌کردند. شرکای شایسته، اشخاص شایسته تقریبا مثل این میمونه. اون مانند یک مسلسه قانون حیاتی که خدا به عرصه میاره وقتی زن و مرد رو خلق میکنه، اینه که انسانها شرکا بشن تا بتونن والدین بشن به این به عنوان یک مثلث فکر کنید یک مثلث نمیتونه بدون قاعده و یا بدون یکی از دو ساق باشه پدر و مادری بر شایستگی شراکت بنا میشه شراکت تا جایی شایسته و موثره که دو شخصی که با هم شراکت میکنن شایسته باشند وقتی که کتاب مقدس به ما مشورت میده که چطور والدین شایسته و یا شرکای شایسته و یا شخص ای باشیم کتاب مقدس همیشه به ما میآموزه تا از فرد شروع کنیم بیایید از شخص خود شما شروع کنیم. جالب که این در کتاب مقدس حقیقت داره. جالب که این حقیقت در کتاب مقدس وجود داره. در اول پتروس برای نمونه باب سوم پتروس به زنی اشاره میکنه که شوهر داره و شوهری که از کلام خدای اطاعت نمیکنه. این به اون مفهوم که شوهر او ایماندار نیست یا ممکنه که ایمان داره اما همیشه از کلام خدای اطاعت نمیکنه. پطرس با الهام از روح القدس با او صحبت میکنه که او باید چه جور زنی باشه. چیز دیگری راجع به شوهر او نمیگه و سعی نمی کنه که اون رو عوض کنه. اگه بهش فکر کنید این خیلی واقعگرایانه است. یکی از دوستانم که روانشناسه میگه علت بسیاری از نگرانی ها و ناراحتی های ما اینه که اهداف ما بستگی به این داره که دیگران چی کار میکنن. برای مثال ما انتظار داریم که فرزندانمون کارهای به خصوصی رو انجام بدن. اهداف ما سالها بر این بنا شده و بعد میفهمیم که واقعا نمیتونیم کاری که اونها میکنن کنترل کنیم. من میخوام شوهرم کارهای بخصوصی رو انجام بده و این هدف من در امثاله به این نتیجه میرسم که نمیتونم شوهرم رو کنترل کنم من اهدافی دارم که بسته به اینه که میخوام زنم چه کاری انجام بده توهمات من از بین میره ناراحت میشم زیرا متوجه میشم که نمیتونم در طول سال همسرم یا دیگران رو کنترل کنم و عوض کنم این غیر واقع بینانه است که فکر کنیم میتونیم مشکلات رو حل کنیم یا اینکه روابط خودمون رو با عوض کردن دیگران تحکیم ببخشیم وقتی مردم برای مشاوره ازدواج نزد شبان میان کسی که به طور مداوم میخوان ازش حرف بزنن طرف مقابله مثل مردی که وقتی شروع به مشورت کرد میگفت اگر موسی زن منو میشناخت ده فرمان میتونست یه جوره ای باشه و این روشی بود که اون مرد میخواست راجب بزنش زنش صحبت کنه بر این اعتقاد بود که اگر میتونست به وسیله شبان اشکالات طرف دیگر رو رفع کنه همه چی درست میشه و او دیگه مشکلی نداشت این خیلی واقع بینانه نیست معمولا مشکلات رو حل نمیکنه اما اکثر مردم فکر میکنند که مشکلات با عوض کردن شخص مقابل حل میشه کتاب مقدس میگه که رفع مشکلات رو با قاعده مثلث برای شخص شروع کنیم. و همین که میخوایم شروع کنیم بذارید از خود شما شروع کنیم شما برای شخص مقابل پاسخگو نیستید بر اساس تعالیم کتاب مقدس درباره داوری ما در مقابل خدا به عنوان شرکا نخواهیم استاد. در روزی که در مقابل خدا میستیم، ما برای شریک ازدواجمون پاسخگو نخواهیم بود شما برای خودتون پاسخگو خواهید بود شما مسئول خودتون هستید شما میتونید برای خودتون کاری بکنید. اگه میخواهید این قانون زندگی که خدا براتون ترک کرده در شما تقویت بشه این شما هستید که باید به خودتون فکر کنید حالا میخوام بررسیمون رو بر نقش والدین متمرکز بکنیم این نقش حساسیه یکی از چیزهایی که میخوایم اینجا بفهمیم اینه که یک بچه قراره که بزرگ بشه و پدر مادرش رو ترک کنه این قانون زندگیه شما بچه هاتون رو حدوداً به مدت 20 سال دارید و اگه قرار هر کسی کار خودش رو انجام بده وقتی شما اونها رو به مدت 20 سال داشته اید بعد از اون اونا شما رو ترک خواهند کرد اونا به کس ای ملحق میشن این ترک کردن اونها نباید ناگهانی باشه باید وقتی بچه تدریجاً بزرگ میشه و از سنین مختلف عبور میکنه انجام بگیره فکر می‌کنم یکی از بزرگترین چالش‌ها اینجا این هست شما این بچه را به مدت 20 سال داشتید وقتی که از صفر شروع کردید وقتی شما اون کودک کوچک رو که قنداق به تنش بود بغل گرفتید لازم بود که اینو در نظر داشته باشید روزی این بچه به یک شهر دانشگاهی خواهد رفت و به شما خواهد گفت من میتونم هر کاری رو که دلم می‌خواد انجام بدم اون موقع شما چیکار خواهید کرد این چیزیه که وقتی شما اون بچه قنداقی رو در آغوش گرفتید باید بهش فکر می‌کردید بعد از طی حدود 20 سال چیزی که به عنوان دوره تربیت شروع میشه تبدیل به اعتقادات بچه شما خواهد شد. جایی در طی دوره تربیت باید تبدیل به اعتقادات اونها بشه. شما قادر نخواهید بود تا عبد اونها را تربیت و کنترل کنید. شما باید برای مکالمات اون بچه دعا کنید این مکالمات بچه شما هست که ارزش روحانی رو در دل بچه شما قرار میده و اون رو تبدیل به اعتقادات اون بچه میکنه وقتی این اتفاق میفته وقتی بچه شما درست مانند شما تبدیل میشه، او ارزش روحانی خواهد داشت. و دیگه لازم نیست که او رو زیاد کنترل کنید. زیرا که روح القدس شروع میکنه به تبدیل زندگی بچه شما. ما گفتیم که پدر و مادر شایسته بودن تا حدود زیادی بسته به شایستگی شراکت شماست. سلیمان در مضمور 127 به ما میگه که کودکان مانند تیرهای کمان هستند و والدین مانند کمان. اعتماد و مسیری که بچه ها از آن وارد زندگی می بستگی داره به اینکه از چه کمانی اونها پرتاب شدن. این مفهوم خانه برای کودکان هست. اگر شما به جای شریر بودید و میدونستید دونستید که می خواهید این قانون بزرگ زندگی رو که خدا ساخته بشکنید، چی کار می کردید؟ شما احتمالا سعی می کردید که ذهن کمان رو ببرید و بعد اون کمان ها در هیچ مسیری پرتابی نداشتند. وقتی امروز با یه شخص جوان صحبت می کنم، معمولاً به شعری اشاره می کنم که شاعری گفته من تیری به هوا پرتاب می کنم، اون بر زمین می افته، نمیدانم کجا. این روشیه که بعضی از کودکان در زندگی پیش می گیرن. نه پرتابی و نه مسیدی، چون که اونها از کمان خیلی خوبی پرتاب نشدن. برای اینکه والدین شایسته باشند لازمه که شراکت بین اونها شایسته باشه. پس بیاید یه خورده دیگه روی این شراکت بین زن و مرد متمرکز بشی شراکت بین زن و مرد بخش مهمی از قانون اساسی خدا برای زندگیه به این دلیل که خدا اونها رو زن و مرد آفریده اگر مرد به خدا وابسته باشه و اگر زن نیز به همون خدا وابسته باشه به عنوان دو شخص اون مرد و زن به خدا نزدیکتر میشن و به همدیگه نزدیکتر میشن و بر اساس کتاب مقدس در این رابطه بین زن و مرد اونها یک تن میشن اونها در هم تنیده میشن و یک تن میشن در جاهای دیگه کتاب مقدس ما چیزای زیادی رو در مورد این رابطه میبینیم چون که اون خیلی اهمیت داره ما از کتاب مقدس میفهمیم که این گره میان دو شخص یک ارتباط مشیتی الهیه برای اینکه اون از قلب خدا سرچشمه گرفته خدا اونها رو یک جا قرار داده این ایده ازدواج و خانه از طرف خدا بوده این گرهی مشیتیه برای اینکه وقتی ازدواجی در نظر خدا هست میتونید بگید خدا ما رو به هم رسونده یک ازدواج از نظر خدا چه مفهومی داره؟ به نظر من ازدواج از نظر خدا اینه اونهایی رو که خدا به هم ملحق کرده هیچ انسانی جدا نسازد. ازدواج از نظر خدا ازدواجی هست که دو نفر به وسیله خدا به همدیگر ملحق میشن پس وقتی ازدواجی بر اساس اراده خدا بوده اگر ازدواج شما امروز اینجوریه شما باید بتونید بگید. خدا این رو فراهم کرده و خدا ما رو به هم ملحق کرده. بر اساس عهد جدید، عیسی وقتی که کلید کتاب پیدایش رو به ما میده، ازدواج پیوندی الهی هست. زیرا تنها خداست که میتونه اون رو حفظ کنه. عیسی به رسولان گفت که این پیوند یک ضرورته و اون باید پیوندی ابدی باشه. وقتی عیسی به ما چیزی که به اون ثبات روابط زناشویی میگیم آموخت، یکی از رسولان تصور میکنم که پطرس بود هرچند کتاب مقدس اینو نمیگه یکی از رسولان گفت اگر قرار این گونه باشه بهتره که ازدواجی صورت نگیره تفکر داشتن یک زن در تمام طول زندگی برای اون رسول سقیل بود عیسی به اون نصیحت نمی کرد یا اون رو تربیت نمیکرد. فقط می گفت هر کسی نمیتونه به این نتیجه برسه فقط اونهایی که خدا بهشون کمک میکنه میتونن عملا چیزی رو که خدا براشون تعار یعنی ازدواج رو تجربه کنن اون یک رابطه ای مقرر شده است چون که خدا اونها رو یکی کرده، خدا اونها رو با هم یکی کرده، فقط خدا میتونه این اتحاد رو حفظ کنه. این پیوندی ارادی هست چون که این قانون زندگی که به وسیله اون خانواده الهی به این دنیا میاد، پرورش پیدا میکنه و با زندگی در این دنیا مواجه میشه. به این ترتیب زوجهای ازدواج کرده میتونن بخشی از راحل خدا و در آن سحیم باشند. نبخشی از مشکلات اجتماعی وقتی ازدواج رو در پیدایش مطالعه می‌کنید میفهمید که از دو جنبه اون باید رابطه‌ی منحصر به فرد باشه به خاطر موضوع ازدواج مرد پدر و مادر خود رو ترک می‌کنه خانواده ای رو که 20 سال یا 25 سال در اون زندگی کرده بود رها می کنه این منحصر به فرده چون که به سبب ازدواج او همه رو رها می کنه او تا آخر عمر به زوجش وفادار خواهد ماند این قصد و اراده‌ی خداست چرا خدا رابطه رو ماندگار کرده به اعتقاد من به خاطر چیزی هست که به اون حقوق فرزندان میگیم. ما امروزه خیلی درباره حقوق میشنویم فکر میکنم درباره حقوق کودکان باید چیزی گفته بشه. فرزندان میدونن که اونها تا موقعی در امنیت هستند که ازدواج والدینشون پایداره به این دلیل هست که اگر شما میخواید آرامش رو در بچه هاتون ببینید نیم نگاهی به فرزندانتون بندازید وقتی همدیگر رو میبوسید یا با هم شوخی میکنید اونا ممکنه وقتی بزرگتر شدن شما رو دست بندازن اما دوست دارن که شما رو ببینن که همدیگر رو میبوسید چون این احساس امنیت برای اونها داره اگه یه ازدواج خوش فرجام هست اونها امنیت دارن اگه شما زد و خورد و مشاجره طولانی دارید به فرزندانتون نگاهی بندازید شما چهرهای ناامن خواهید دید یک چهره وحشت زده اونها میدونن تا وقتی که زناشویی در امنیت هست اونها هم در امنیتن پس خدا به فرزندان فکر میکنه وقتی میگه ازدواج پیوندی دائمیه، همیشگیه. ازدواج همینطور از این جنبه منحصر به فردی که شما باید دیگران رو رها کنید تا اینکه در این زندگی امنیت و ثبات ایجاد کنید. اون باید براساس پایداری بنا بشه. نظر دیگه در ارتباط با ازدواج اینه که ازدواج یک رابطه تماما ناگسستنیه. سلیمان 700 زن و 300 زن صیغه‌ای داشت. پس او تا حدی در مسئله ازدواج اقتدار داشت. سلیمان در جامعه در باب روم میگه یک رابطه زناشویی مورد نظر خدا مانند یک تناب سلایهی هست که با آسانی پاره نمیشه. کاربرد چیزی که منظور او هست اینه. این رابطه بین این دو نفر سطوح مختلف زیادی داره. حداقل سه ست. اولا مرد و زن در روح کی میشن؟ خدا در نظر داره اونها متحد بشن؟ یا در روح یکی بشن اون حتی در نظر داره در فکر یکی بشن اونها باید چیزی رو داشته باشن که ما امروزه بهش ارتباط میگیم خدا اونها را از جنس مختلف خلق کرد خدا اون روابط جسمی رو خلق کرد تا در این ارتباط عمیق تجربه لذت مخشی از بودن با هم داشته باشن خدا مقصودش این بود که ما در روح یکی بشیم در فکر یکی بشیم و اون یگانگی رو توسط اتحاد جسمی ظاهر کنیم یعنی وحدت جسمی حیوانات این تجربه جسمی رو دارن اما یگانگی در روح نیست یگانگی در فکر نیست این فقط حیوانیه این اتوماتیکه گاهی اوقات در مشاوره های ازدواج من شنیدم که زنان و مردان میگن روابط جنسی ما اتوماتیک یا حیوانیه علت این اونه که اونها واقعا ارتباط ندارند و ارتباط روابط جسمی نشان دهنده اتحاد عمیق نیست اون فقط یه ارتباط حیوانیه. این چیزی نیست که خدا ترکرده. قصد خدا ارتباطی این چنینی نبوده. قصد خدا این بوده که ما مانند تناب سلایهی باشیم سرشده ای که به آسانی پاره نمیشه. او قصد داشته که ما در روح و فکر یکی بشیم. بعد ارتباط جسمی ما آنگونه که باید باشد خواهد شد. اگر ما این یگانگی رو در هر سست داشته باشیم بعد اون تناب سلایه رو خواهیم داشت که سلیمان گفت با آسانی پاره نمیشه یک فکر دیگه در قانون حیات همونطور که میبینید در پیدای شرط داده شده اینه ما ازدواج، خانه و خانواده رو همونطوری که بود و همونطوری که هست میبینیم بر اساس کتاب مقدس بدون کمک خدا شما نمیتونید والدین شایستهی باشید کتاب مقدس میگه اگر خداوند خانه را بنا نکند بنایانش زحمت بیفایده میکشند اگر خداوند شهر را پاسبانی نکند پاسبانان بیفایده پاسبانی می کنند بیفایده است که شما صبح زود برمیخیزید و شب دیر می خوابید و نان مشقت میخورید. اینجا خط سیر جالبی از چیزی که او در این آیات می بینید. اگر شما سعی می کنید که شبی بخوابید و فردا روز طولانی خواهید داشت آیا مسخره نخواهد بود که دراز بکشید و به خواب نرید و بگید خدایا فردا روز بزرگی دارم باید به من کمک کنی به من قوت بدی من دراز میکشم و کمک می میکنم که تو به بدن من نیرو بدی تا زمانی که شما دراز کشیدید و هنوز خواب نیستید اون نمیتونه به بدن شما نیرو بده وقتی شما منفعل هستید و همه چیز رو به او واگذار میکنید و زندگیتون رو به دستهای او رها میکنید و میرید و می خوابید معجزه بزرگ اتفاق میافته اون نیروی از دست رفته رو به بدن شما برمیگردونه شما میتونید 6 یا 8 ساعت بعد در حالی که انرژی یافتید بیدار بشید سلیمان میگه خداوند به عزیزانش این قابلیت رو میده که والدین ای باشند به شرطی که فرزندانتون رو به سوی او برگردونید و اجازه بدید که او خانه رو بسازه به طور خلاصه شما نمیتونید بدون کمک خداوند والدین کاملی باشید عیسی درباره ازدواج گفت هیچکس نمیتونه به این گفته برسه مگر اینکه خدا او رو کمک کنه شما واقعا نمیتونید اون چیزی رو که برای ازدواج شما ترک کرده تجربه کنید مگر اون که با کمک خدا باشه یکی از پیام های بزرگ در عهد جدید و عهد قدیم اینه شما نمیتونید بدون کمک خداوند یک شخص شایسته ای باشید کتاب مقدس به این صورت اون رو بیان میکنه عیسی در یوحنا باب سوم میگه آنچه از بشر خاکی زاده شود بشری است اما آنچه از روح زاده شود روحانی است عجب مدار که گفتم باید از نو زاده شوی پیام بزرگ انجیل اینه چگونه خداوند جدایی بین انسان و خدا رو از میان برمیداره چگونه خداوند عمل خلقتی رو که ما نیاز داریم درون ما آغاز میکنه او به وسیله تولد تازه آغاز میکنه به این دلیل که عهد قدیم میگه عیسی خواهد آمد و در عهد جدید میگه عیسی آمد شما باید دوباره متولد بشید شما میتونید اون عمل خلقت رو در قلبتون داشته باشید و میتونید انسان شایستهای بشید بر اساس کتاب مقدس شما نمیتونید بدون کمک خداوند والدین شایسته یا شرکای شایسته یا شخص شایسته ای باشید. به این دلیلی که ما باید برگردیم به کتاب پیدایش باب یک و دو و خلقت انسان رو آنگونه که بود و آنگونه که هست ملاحظه کنیم. خودمون رو آنگونه که هستیم درد کنیم. ما هرگز نمیتونیم اشخاص شایسته ای باشیم مگر اینکه خلقت تازه ای داشته باشیم به پیدایش برگردید و قصد و اراده خدا رو وقتی ما رو خلق میکرد ملاحظه کنی بر اساس کتاب مقدس ما هرگز نمیتونیم والدین شایسته ای باشیم مگر اینکه برگردیم به پیدایش و اجازه بدیم خدا با ما از خانه حرف بزنه از اشخاص از شرکا از والدین همان گونه که بودن و همان گونه که مقرر بود باشند و خداوند به ما کمک میکنه تا اشخاص شرکا و والدین شایسته ای باشیم آیا میخواید که روابطتون رو در خونواده بهبود ببخشید؟ برید بخوابید. همونطوری که معلم ما گفت، تنها راهی که میتونیم نیروی از دست رفته خودمون رو به دست بیاریم، اینه که زندگیمون و روابطمون رو به دستهای خداوند بسپاریم و در اون آرام بگیریم. باشد که خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر که ما رو با محبت ابدی و با فیزش دوست داره و به ما دلگرمی و امید داده دلهای شما رو گرم کنه و تا برنامه بعدی ما شما رو در هر کار نیک تقویت کنه.